Surah Anjibut. I ask In قصب <تصفيق> <تصفيق> الناس این یترکو لا نام الله که بخشاگانده و با رحمت است <تصفيق> <تصفيق> آیا مردم پنداشتند همین که بگویند ایمان آوردیم رها می شوند و امتحان پس نمیدن؟ ما نهست قبل از آنها را امتحان کردیم تا خدا معلوم کند چه کسانی صداقت داشتند و چه کسانی دروغگو بودند؟ آیا آنان که عمل کردشان بد و پلیده است پنداشتند که می بر ما ما چیره شوند چه بد داوری میکنند هر کس به دیدار خداوند امید دارد بداند وعده دیدار الهی آمده است و او شنوا و آگاه است هرکس در راه حق تلاش کند به نفع خود عمل کرده است زیرا خداوند از همه جهانیان بینیاز است کسانی که به حقایق ایمان آورند و عمل کردی نیک و شایسته داشته باشند ما گناهان آنان را محو میکنیم و پاداشی بهتر از عمل کردشان میکنیم. و به انسان سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادرش رفتار نیکی داشته باشد. و اگر آن دو بکوشند تا چیزی را که بدان دان نیستی شریک من سازی، از آنها اطاعت مکن بازگشت همه شما به سوی من است و سرانجام شما را نسبت به عملکردتان آگاه خواهم کرد و کسانی را که به حقایق ایمان آورند و دارای عملکردی خوب و شایسته باشند در زمره سالحان بیاوریم. گروهی از مردم میگویند ما به خداوند ایمان آورده ایم اما هنگامی که در راه خدا آزاری ببینند فتنه دشمنان را چون عذاب الهی میپندارند و قلبشان از ایمان خالی میشود و هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت فرارسد و فتنه و آزار تمام شود میگویند ما نیز با شما بودیم آیا خداوند به آنچه در دلهای جهانیان است آگاهتر تر نیست خداوند بطعا می اهل ایمان کیست و منافق کدام است کافران به اهل ایمان گویند به راه ما بیایید اگر گناهی داشت گناهتان بر عهده ما بدانید که آنها کوچکترین گناه کسی را به گردن نمی گیرند و دروغ میگویند بلکه بار سنگین دیگری بر بار گناهان خودشان افزوده و آن را سنگینتر کرده و به دوش میکشند مسلما در روز قیامت نسبت به دروغهایی که بافتند بازخواست خواهند شد ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و اون نهصد سال در میان آنها زندگی کرد سرانجام طوفان آنها را فرا گرفت زیرا مردمی ظالم بودند و نو و کسانی را که در کشتی بودند نجات بخشیدیم با آن کشتی را عبرتی برای جهانیان قرار دادیم و یادار ابراهیم را هنگامی که به قومش گفت خدا را پرستش کنید و حرمتش نگاه دارید که اگر درک کنید این کار برای شما بهتر از هر چیز دیگر است اما شما به جای خدا بتان را عبادت می کنید و دروغ های بزرگ می سازید. بدانید آنهایی را که به جای خدا یکتا می توانایی دادن رزقی را به شما ندارد. رزق و روزی را از خداوند بزرگ طلب کنید و او را عبادت نمایید و شکر او را به جا آورید زیرا همتان به سوی او باز می گردید. اگر حق را تکذیب کنید بدانید که ملت های قبل از شما نیز تکذیب کردند و بر پیامبر وظیفه جز یک ابلاغ روشن نیست آیا آنها نمی بینند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می کند، سپس به سوی خود باز میگرداند؟ این کار برای خدا آسان است بگو در زمین سیر کنید و بینگرید که خداوند چگونه مخلوقات را میآفریند سپس آخرت را ایجاد مینماید بدانید که خداوند بر هر کاری تواناست خدا هر کس را صلاح بداند مجازات می‌کند و هر کس را صلاح بداند مشمول رحمت می‌نماید بدانید که همگی به سوی او دگرگون می‌شوید امکان ندارد که شما بتوانید از خداوند بگریزید نه در آسمان و نه در زمین و جز خداوند هیچ یار و یاوری نخواهید داشت کسانی که آیات الهی و دیدار خدا را انکار نمودند همشان از رحمت من معیوسند و برایشان عذابی دردناک معیز اما جواب قوم ابراهیم چیزی نبود جز که گفتند او را بکشید یا در آتش بیندازید. سرانجام خداوند او را از آتش نجات داد. دراستی در این ماجرا برای اهل ایمان ابرت است. ابراهیم گفت شما به جای خداوند بوتانی را اختیار کرده اید تا در این زندگی دنیا میان شما ماگه مودت و دوستی باشند. اما در روز قیامت یک دیگر را انکار خواهید کرد. و نفرین خواهید نمود و جایگاه همه شما آتش دوزخ است و هیچ یاوری نخواهید داشت لوت به ابراهیم ایمان آورد و گفت من مهاجری به سوی پروردگارم هستم او قدرتمند و حکیم است. ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را عطا نمودیم و در دودمان او پیامبری و کتاب را به ودیعت گذاشتیم و پاداشش را در دنیا عطا کردیم و در آخرت نیز از سالهان است و لوت را به پیامبری فرستادیم و به قوم خود گفت شما اعمال زشتی انجام می دهید که قبل از شما هیچ کس از مردم جهان مرتکب نشده است چرا شما به سراغ مردان می روید و راه بقای نفس را قطع میکنید و در محافل خود کارهای زشت مرتکب میشوید؟ جواب قومش جزی نبود که گفتند عذاب الهی را برای من بیاور اگر راست نگویی لوت گفت پروردگارا مرا بر این قوم فاسد و طبعکار یاری فرما هنگامی که رسولان ما برای ابراهیم مجد آوردند گفتند ما نابود کنندگان اهل این شهر هستیم زیرا اهالی آن ظالمند ابراهیم گفت در آنجا لوت پیامبر هست گفتند ما بهتر می‌دانیم چه کسانی در شهرند او و خانوادهش را نجات خواهیم داد مگر همسرش که با بازماندگان در شهر می مانند. و که رسولان ما به سوی لوت آمدند از دیدن آنها اندوگین شد و در کارشان بماند گفتند نترس و غمگین مباش ما نجاک دهندگان تو و خانواده‌ات هستیم البته بجز همسرت که در شهر با بازماندگان خواهد ماند ما به خاطر اعمال زشت اهالی این شهر از آسمان بر سرشان عذاب نازل خواهیم کرد ما از آن شهر برای خردمندان عبرتی آشکارا بر جا گذاشتیم و به سوی شهر مدین برادرشان شعیب را فرستادیم و او گفت ای قوم من خدا را عبادت کنید و به روز قیامت امید داشته باشید و در زمین فساد و تباهی به راه نیندازید سرانجام او را تکذیب کردند و زلزله آنها را گرفتار کرد و در خانههایشان بر جای مردند ما قوم آد و سمود را نیز حلاک کردیم آثار خانه برای شما آشکار است. شیطان اعمالشان را در نظرشان زیبا جل بگر نمود و از راه نجات بخش خدا باز داشت در حالی که مردمی صاحب بسیرت بودند و قارون و فرعون و هامان را نیز حلاک کردیم زیرا موسا با دلایلی روشن نزدشان آمد اما آنها در روی زمین تکبر ورزیدند و برتری جویی نمودند و عاقبت نیز نتوانستند از مجازات الهی بگریزند. همه را به سبب گناهانشان گرفتار کردیم. بر بعضی طوفان شن فرستادیم و بعضی را سیهی مرگبار فرو گرفت. برخی را در زمین فرو بردیم و برخی را غرق کردیم. بدانید که خداوند با آنها ظلم نکرد. بلکه این آنان بودند که به خیشتن ستم کردند. مثل کسانی که چیزهای دیگری را به جای خداوند تکیگاه و دوست خود برمیگزینند مثل انکبود است که سر سست اختیار کرده است. بدانید خانه خانه‌ها خانه انکبود است. کاش این نکته را درک می‌کردند. خداوند بزرگ می‌داند که آنها چه چیزهایی را سوای خودش به خداوی میخوانند. او قدرتمند و حکیم است. اینها مسلهایی است که برای مردم میزنیم. حالان که جز اهل دانش کس دیگری آن را درک نمی کند. خداوند آسمان ها و زمین را به حق خلق کرده است و این خود برای اهل ایمان عبرت است. اتل ما اوحي إليك من الكتاب و اقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون انشروك <تصفيق> از کتاب بر تو وعی شده تلاوت کن و نماز به پایدار زیرا نماز از فهشا و زشتی ها باز می دارد. و بدان که یاد خدا بزرگتر از هر چیز دیگری است و خداوند نسبت به رفتارتان آگاه است با اهل کتاب فقط به نیکوترین وجه مجادله کنید مگر کسانی از آنها که ظلم و ستم کرده باشند به آنها بگویید ما به هرچه بر ما نازل شده و هرچه بر شما نازل گشته است ایمان داریم خدای ما و شما یکیست و ما سراپا تسلیم او هستیم و این چونین قرآن را بر تو نازل کردیم پس کسانی که کتاب آسمانی عطایشان کردیم به قرآن ایمان میآورند. برخی از این گروه نیز به قرآن ایمان میآورند بدانید کسی آیات ما را این کار نمی کند مگر اینکه به حقایق کافر باشد. تو قبل از قرآن هیچ کتابی را نخوانده ای و به دست خود آن را ننوشته ای. مبادا اهل باطل شک و تردید کنند. بلکه قرآن آیات روشنگری است که جایگاهش سینه اهل دانش است و غیر از ظالمان کسی آیات ما را انکار نمی کنند. و گفتند چرا معجزاتی از جانب پروردگارش بر برو نازل نمی شود بگو آیات و معجزات نزد خداوند است و من فقط دهنده ای آشکارم آیا همین قرد که کتاب بر تو نازل کردیم تا بر آنها خوانده شود برایشان کافی نیست؟ در این کتاب برای اهل ایمان سراسر رحمت و پند است بگو خدا به عنوان گواه بین من و شما کافی است خدایی که آنچرا در آسمانها و زمین است میداند آگاه باشید کسانی که باطل را باور کردند و به خدا کفر ورزیدند بیشک زیان کردند از تو عجولانه عذاب را میخواهند اگر آن مهلت مقرر نبود مجازاتشان آمده بود و به صورت ناگهانی بیان که خبردار شوند همشان را در بر می گرفت از تو عجولانه عذاب را میخواهند خواهند حالان که جهنم بر کافران احاطه دارد روزی که عذاب سراپایشان را فرا خدا گوید، به خاطر عمل عذاب را بچشید ای بندگان من ای کسانی که به عقای ایمان آورده ای زمین من وسیع است پس فقط مرا عبادت کنید هرکس کس تعم مرد را خواهد چشید و به سوی من بازگردانده خواهید شد کسانی که به حقایق ایمان آوردند و عمل کردی نیکوف و دارند در گرفه بهشتی که از زیر آنها نهرها جایشان می و در آن جاودان خواهند ما و چه پاداش خوبی است برای اهل عمل همان کسانی که صبر و استقامت کردند و بر پروردگارشان توکل نمودند و چه بسیار جنبندگانی که توانایی به دست آوردن رزق خود را ندارند اما خداوند روزی آنها و شما را میدهد زیرا او شنوا و آگاه است چون که از آنها بپرسی چه کسی آسمانها ها به زمین را خلق کرد و خورشید و ماه را رام نمود بیشک خواهند گفت الله پس چگونه از راه حق منحرف می شود الله یبسط رزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. إن الله بکل شیئن علیم خداوند روزی هر کدام از بندگانش را که صلاح بداند فراوان میدهد و یا بر او تنگ میگیرد بدانید که خداوند بر هر چیزی آگاه است چون چه از آنها بپرسی چه کسی آبی را از آسمان نازل میکند تا به وسیله آن زمین را پس از مردنش حیات بخشد بیشک خواهند گفت الله بگو ستایش مخصوص خداوند است ارجنت، اکثرشان درک نمی‌کنند. این زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست. بدانید که سرای آخرت سرای زندگی حقیقی است. کاش این نکته را می‌فهمیدند. هنگامی که سوار بر کشتی هستند، خدا را با اخلاص تمام می‌خوانند. اما هنگامی که از طوفان نجاتشان دادیم و به خشکی رساندی شروع به شرک برزی میکنند تا هایی را که به آنها عطا کرده ایم کفران کنند بگذار اکنون لذت ببرند و بهرهمند باشند به زودی حقایق را خواهند فهمید آیا نمیدانند دانند که ما حرم امنی را ایجاد کرده ایم و حالان که در اطراف آن مردم را می چرا باطل را می میکنند و الهی را کفران می نمایند. چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ می‌بندند و یا حق را تکذیب می کند آن هم پس از آن که حق برایش روشن شده است آیا جایگاه کافران و منکران حقیقت در جهنم نیست آنان که برای ما خالصانه تلاش کنند بیشک آنها را ذرا هو نجات بخشمان هدایت میکنی بدانید خداوند با نیکوکاران است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین صدق الله العلی العظیم راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیانبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم